اللهم صل على فاطمة و أبيها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم صل على محمد وأول محمد معجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم مبارسه ارتبال معصومین صفحه 149 بحث سرکه طبیعی مخصوصا سرکه انگور اسکری و سرکه سیب الخلو یعنی سرکه طبیعی سرکه انگور تحویره چه فوائدی داره خل الخمره چگونه به دست میاد خل الخمره هو عصير العنب الذي يجعل فيه مقدار من الخله آب انگوری که درش ریخته میشه یه مقداری از سرکه طبیعی و یون وعف شمس و در نور خورشید قرار میدیم درشم میبندیم تا وقتی که چی بشه سرکه بشه این حرف این بنده خدا حرف ما چیه؟ فرمایش دکتر لری بیون حرف ما اینه شما مثلا انگور عسکری خریدی اینها رو میگیریم میشوری؟ همین دونه رو تو پارچه پن میکنی جلوی پنکه یا نور خورشید که آبی که آب کشیدی یا خوشه بعد این دونه میریزی همه رو توی خمره خمرهی که دهنش باریکه مثلا ده کیلو پونزه کیلو هرچه بعد تی این مثلا نیم کیلو یک کیلو سرکه میریزی درش رو با پارچه میبندی. بالای پارچه با گچ میبندی روش مومنهایی زیلی کهانهی حسیلی چیزی مندازی چهر روز بگذره قبل از چه روز حوامه ها حداقل چهر روز بگذره اگر تا دو ماه باشه بهتره بعد از دو ماه آبش صاف میکنی این سرکه طبیعی به دست آمده یک مخمر طبیعی به نفع بدنه و خیلی هم فوائد داره حالا فواید او فواید مصرف بجا به موقع از سرکه طبیعی خل العنبه ينفع المعده الملتهبه خوردن سرکه طبیعی نفع میبخشه، سود میبخشه به معدهی که التهاب جداری دارد و رودهی که التهاب جداری دارد و یقمع و و قلعقم میکنه کنه صفرای اضافی و قلزت صفرا و یا سنگ ریزه کیسه صفرا را و ضرر ورالعدویت القتاله عدویجاتی که سمی هستن کشنده و طرف نمیدونسته اثر سوء اون عدویه ها رو عبه می بره یعنی یک زهره یک ضد سمه به اصطلاح خودم یک تریاق وقف یک ضد سمه قویه نسبت به ادویه سمیه و یحل للبن و دم اضجمدا فل اگر خون انسان غزتش بالا بود یا یک جا لخته شده بود انواع واریسا یا اینکه شیر در پستان مادر منجمد شد بند آمد مادر تو جیره قزایش سرکه طبیعی بگذره مخصوصا اول هر غذا اول نهار اول شام از نوک قاشق چای خوری تا یک قاشق میتونه به همراه غذاش بخوره میتونه تو آب هم بزنه بخوره تسالی فهمیدید خیلی فواید داره حتی نسخه هم داریم که شما اول رو با نمک شروع میکنید ما اول غذامون رو با سرکه طبیعی شروع میکنیم زیاد نباید بخوره ها که بیماری میاره سرسوزه معده یوبوسط شدید اگر باشی شکم گرسنه زیاد ترشیجات بخوره بندری و لیتان پیسی هم میاره بیماری بررس نه چجور اول و آخر قضا مستحب با آدم نمک بخوره کم دیگه که بزاق و آنزیم دهان فعال بشه چون بخشی از هضم قضا تو دهانه حالا معصوم میگه ما اول قضامون ابتدا به سرکه میکنیم یعنی یه مختصر سرکه خیلی فواهد داره حتی پیشگیری میکنه و در درمان سنگ بزاقی هم مفیده کسی زبونه هست سنگ بزاقی حالا این تیکه و یحلل لبن شیر رو تحلیل میبره دم که خونه بسته یا خونه قلیز یا لخته یا واریس ازا جمدا فل وقتی شیر در جوف آدمی بسته شده مثلا در لبول های پستان مادر اگر شیر منجمد شد چون باید تخلیه بشه این بچهش بدخوره نمیخوره بی اشتاها هست یا بیماری دیگه مثلا سقف دهان شیر زابیهی نداره مثلا صافه مشکل بلعیدن داره یا کیست بزرگ یا تومور داره تو سخف دان عملش کردن تا یه مدت نمیتونه شیر بمیکن یا تراز فکی نداره تصال فهم چون چونهاش جلو اغربه تصال فهم بودی اینا بعضی مریضا میانن من دیدم معامنم کن حالا در این موارد چون شیر مادر دوشیده نشده یا توسط بچه میکیده نشده معامن ها بچه شیر خواهد اینجا شیر تو بسونش خوش میشه و دردناک میشه پس رو سرکه که تو جیره قذایی باشه مدر شیره شیر رو رقیق میکنه همچنین مؤمن شیر رو رقیق میکنه همچنین مؤمن خون رو که قرزت داره یا میخواد لخته بشه یا علائم سکته میخواد آشکار بشه یه مختصر سرکه طبیعی مثلا یه قاشق چای خوری سرکه طبیعی تو نصف استکان یا یک استکان آب هم بزن بخور تو پزشکی جدید وقتی میخواد علائم سکت آشکار بشه چی کام کنه سوید میگن یک جایی بلانت زخ کن یه مقدار خون بیاد وقتی یه مقدار خونت کم شده پلاسمای خونت میره بالا چه از وقتا خون... مایات میره خونت رقیق میشه، گردش خونت سریع میشه. پیشگیری میکنه از لخته شدن. اینایی که دیگه خیلی سوپر ها رو میگن زود برو نصف واحد یا یه واحد خون بده به انتقال خون. اینجا مهم یک یکباره پلاسمای خون، مایات خونید میره بالا. خونت خیلی رقیق میشه، گردش خونت سریع میشه. پیشگیری میکنه از لخته شدن. دیگه سکته قلبی یا مغزی به نوع لخته خون براش پیش نمیاد. این هم مؤمنات تا و ینفع و کسانی که تحالشون مشکل داره مخصوصا کسایی که تالاسمی هم بل اخه از تالاسمی ماجور یعنی کسایی که خونی ژنتیکی شدید دارن به نوع تالاسمی خب اینجا تو پزشکی جدید مؤمنات قالبا تحال شخص رو بر چرا؟ چون هر ماه بین یک تا دو واحد خون به این بچه تزریق میشه بعد آهن بدن بیش از اندازه میره بالا اینه برای که مشکلات بعدی پیش نهید مومن ها رو چکار میکنن؟ بر میدارن. حالا شما میتونی تو جیره قضایی این بچه ستا شیره بذاریم شیره خورما شیره انگور شیره توت کسی که تلسمی ماجوردارا تلسمی شدید این ستا به نسبت مساوی مخلوط کنی روزی ش... سه قاشق پلو خوری سه قاشق پلو خوری ماها سه قاشق سن زیر 15 سال سه قاشق چای خوری سن ششماهیگی تا دو سالگی یعنی هر هشت ساعت یک قاشق چای خوری. از این مخلوت سه شیره بخوره. کم کم نیاز این شخص به واحد خون بیشتر کم میشه. از دو واحد آن کم کم میاد به نصف واحد. خود متخصص خون میگه. میگه بیشتر نمیخواد بزنیم. بعد مال تا حالش رو بر ندارم. تو جیره قضایش سرکه طبیعی انگور عسکری بگذار. که این فال رو پاکسازی میکنه فعالیتش رو بیشتر میکنه به نوع مثبت یعنی تو دفن کردن سلول های مرده خونی فعالتر میشه. اینکه مبتلا به ورم تال نشه، نفریت فحال سپورس. این هم ورم نکنه. تو ساخت های قرمز خون سلولای توری مغز استخوان جیگرسی ها که کبده و تحال هر سه نقش دارن نظیر این که چند قده درون ریز همه نقش دارن در ساخت اسپرم شوهر و تخمک زن قده هیپوفیز مغز قده هیپوتالاموس مغز قده فوق کلیوی و قده چی؟ لوز که پانکراسه یکی از این دوتا و یکی هم همون فیزه شخص تومد یا تختان در زن تصاف فهم چهار تا پس در اسپرم یا تخمک که میخواد تولید بشون چهار قدر درمون ریز نقش تو مباعثه ما در تشکیل و ساخت گویچه های قرمز خونم سه تا از اوزها باید فعال باشن چبد که جگر سیاس هپا یکی ام تحال که سپرز مؤمنا یکی ام سلولای توریه مغز استخوان پس سرکه طبیعی که تو جیره غذایی باشه به نفع تحالته تحال و سپرز کجاست زیر دنده چپ پایین دیافراگم دیافراگم یعنی پرده ای که احشاء بالا رو از پایین جدا میکن. و یدبقه اون داخل معده رو پاکسازی میکنه دباقی میکنه یک شستشوی طبیعی بعضی ها لولوشور میندازن دیگه مؤمن ها تصایب مثل اینکه در زنان مثلا اگر بچهش مرده باشه یا بیماری مول یعنی بچه خوره گرفته باشه پزشکی جدید میگه چکا کن؟ کرتاج یعنی اون مول خارج میشه اون بچه مرده خارج میشه و جدار رحم شستشو میریم که چیزی از جفت باقی نمونه که بعدنا به مادر و تختانه چیزایی دیگه آسیب نرسنه حالا داخل رحم شستشو میریم اینه میگن کرتاج یه الفاظهی میگم برای اینکه که دباقی کنیم نه اینکه که پرزای میده اولین بره بدخوری کنه یا پرخوری کنه تو سرکه بعضیا ها مثلا چاقی شکمی دارن یا اضافه وزن دارم یا چربی موزل خونشون زیاده هی زیاد زیاد سرکه سیب میخوره زیادش بده مومنان این اصلافش جایز نیست هم پرزای میدهش آسیب میبینه هم سرسوزه معده میگیره می می می می می می هم شدید یوبوس سری به ریفلاکسش هم بیشتر میشه برگشت اسید معده به مری نه همون جوری که دین میگه گفتیم اول غذا به جای نمک یه مختصری مثلا فصنم یه قاشق چای خوری خدا افراد با هم فرق میکنن تسا بودیم و یاد بقول معده نباید ترزای معده رو بین ببرید که زمینه التهاب داخلی معده یا زمینه زخم معده بشه این کارو نباید کنین و ید بغل معده و یعقل البطر شکم رو جمع میکنه کنایه از اینکه از اسهالهای های مداوم یا اسهال صفراوی یا سندرم روده تحریک پذیر که گاهی مریض همیشه یوبوسد داره گاهی همیشه شکم روش خب در اینجا یک قاشق چای خوری که تو نصف استکان آب بخوره بعد هر غذاب که یک سیب با توفالش بخوره با پیارش با مهدش جمع میشه درست شد مومن حتی هسته انار پودرش کنان حوضی یک قاشق تا یک قاشق مرب بخوری پودرش بخوره معدش جمع میشه و ضد سرطان قوی هم هست هسته انار این هسته انگور این هم مال یعقل البت و یقطع العطش کسی که عطش کاذب داره یا بیماری استسقه داره علکی آب میخوره بیشتر از نیازش آب میخوره اینجا مومن ها سرکه طبیعی مخلوط با این آب آشمیدنی که میخوره اگر بکنه عطش کاذبش از بین میره یعنی بیماری استسقه ها با یم نال ووررم حیثسایوری و ان کسانی که تو بحث نفرولوجی یا ورم شناسی اگر ورم اندامی گرفت مثلا از زانو به پایین پاش ورم کرد. یا کل بدن ورم کرد اگر مشکلات دریچه قلب باشه کل بدن ورم می اگر مشکلات کلیه باشه کمکاری کلیه نیننتانه به پایین پاها ورم میکنه هر پای دو سه تا پا میشیم. یه بار دیگه نه. ورم های در معده و روده است. و مبتلا به قرارقر قرار شکمیه. خب. داروش چیه؟ تمام اینایی که شماردم. داروش دو چیزه. یکی سیاه دونه شب قبل خواب بخوره یک قاشق مرب بخوری. با یک قاشق اصل. یکی این که قبل هر قضا نکه قاشق چای خوری یا یک قاشق چای خوری سرکه طبیعی انگور اسکاری بخورد هم از ایجاد ورم جلوگیری میشه هم درمان ورم اعضاب و جوارح میکنه هم درمان ورن اعضاب و جوارح میکنه و یمنع می الورن حیثا یورید و این و یعینو علال حتا کمک میکنه به هضم غذا چرا چون سبب تحریک قدرت بزاقی زیر زبان میشه و آنزیم و بزاق دهان که به مقدار نیاز ترش شد و شخصم عادت خوب داشت غذا رو خوب جوید اینجا مؤمنه یک سوم از هضم غذا در دهان انجام شده بخشی از هضم غذا تو دهان انجام شده بعد که وارد معده میشه دیگه قضا سنگین نیست شده نیمه سبک حالا بخشی دیگه از هضم قضا در معده اسید کلریدریک معده یا کاتالیزورهای مجاورتی مثلا بعد از غذا هایتون روح وایات خوندیم خورما خربوزه انار شیرین این همه حازم قضا درست شد ها یکی هم تو بحث خودو میشی بود سرکه طبیعی بود که اول و آخر غذا یه مختصری میخورم رو هم رفتش میشه یه قاشق چای خوریم. و یو دل بلغم کسایی که مکوس بلغم یعنی مکوس با سین کسانی که بلغم اضافی دارن در سر گردن حلق پشت حلق خلت های اضافی گرفتگی های سیونیوس ناشی از مواد زائد مغزی و مانند اینا نزله و تجمع ماهی اضافی پشت حلق که تا میخواد حلق بزنه صرفه خلتی میکنه اینجا مؤمن ها چیه یکی اصل وقیق شده صبحگاهی یکی آبسیب شامگاهی یکی چی بود در امروزانه اول و آخر هر قضایی سرکه طبیعی به مقدار کم و یو واد دل بلغم سد بلغم مخصوصا کسایی که سنشون بالای پنجه ساله درسته بلغمی مزاد و و یولاد فل اغزیت القلیضه غذایی که قلیض هست مثلا وقتی یک دست کله پاچه خورده بابا این خیلی سنگین عم. یا رفته احشای داخلی گسفن جیگرسی ها و سیرابی و اینا اینجا باقل قول سبزواری ها بروک بر بروک بر بخور یعنی برنده حالا مردم اکثرا آبلی موتورش میخوان. یک هم زیاد میخوان اینه یکم میبرونه اما تپش قلبشو بالا میگره حالت ریفلاکس حالت برگشت اسیدی میده توشون زیاد میشه اما اگر سکه سرکه طبیعی بخواه هم کمک به هضم غذا میکنه کم ها هم کمک به هضم غذا میکنه هم معدش از داخل دباقی میکنه هم روده ها رو از حیث فضولات جمعش میکنه نمیگذارش شکم روشش ادامه داشته باشه و املاح بدنش کم بشه آه. کمک به هضم غذا هم که از قلزت غذای خورده شده کاست هست دوچار چند بیماری نمیشه بیماری اول دوچار پیسی نمیشه که یه بیماری پوستی بیماری دوم دوچار ازدیاد انزیم های کبدی نمیشه دوباره تکرار میکنم ولی بار دوم اگر کسی گرست نهست مثلا فرض کن روزه مستحبی یا روزه واجب ماه مبارک یا مثلا قضا گرفته این نیاد اول افتار ما یه پیاله ترشی بخوره یا مثلا یه استکان سرکه بخوره یه پیسی میاره با شکرم گرسته نه ترشی زیاد بخوریم بسیار بایین یکی از اشتباهات برج ها رخ میده و سر صفرهای افتار میارم ما داریم میگیم مسم خل میگیم ابتدا و انتهای قضایت با چی باشه؟ با سرکه باشه. اما تو روز ما که نگفتیم. حرامه. هنگام افتار هم که نگفتیم. هنگام افتار آب جوش ولل. خورما یا حلو خرمایی آب سرد عادی نه سرد تگری شیر تازه گاو کم چرب ولرم. این همه به وایاد تو کتاب صوم. با اینا باید افطارتو شروع کنه. بعدش یه غذای سبک مثلا نون پنیر گردو یا نون پنیر سبزی یا یه بشقاب سوپ. بعد حالا میتونی غذای سنگین‌تر بخوره. نش جانت. چلو کباب بخور. می‌خوام بگم افطار وضعش فرق میکنه با نهار و شامی که طول ساله چون برجه این اشتباه تکرار میکنن به همه مراجعه کردن پیسی شدید گرفته علتش هم و ستون گفتم بود اول افطار حاجه یه پیاله ترشی خورده خب و یولت طفل اغزیت القلیظه من در واقع دارم توضیح میدم و به اطلاق بعضی عبارات این دکتر محترمم دارم انتقاد سازنده می کنم و به روح خودمم هم نمیارم به صورت مطلق بگه قلطه عوارز سوء داره هی باید قیداش بیاری تصاف فهمه و یورق قدم یکی از چیزهایی که خون آدمی رقیق میکنه کنه چیه؟ سرکه طبیعیه انگور اسکریه یارتون اگر کسی قرزت خونش بالا بود هشت لیوان که چار لیوان آب، چار لیوان آب جوشه به لرم بخوره و اگر وضع جیبش بهتر بود و تو خونه یافت می شد عناب، زرشک خام، ریواس، تمشک، آلو بخارا حالا یکی دیگه از چیزهای طبیعی رقیق کنندی خون چیه؟ سرکه طبیعی انگور اسکریه یارتون باشه به تنهایی نخورید مخصوصا کسی که سرسوزه معده داره یا یو بوسط مزبن که اینه بیان وقیقش کن تو آب میخوایی یه لیوان آبتو بخوری وسط روزی عصمونه یا مثلا یه مدت فاصله شده از شامت مثلا دو ساعت گذشته ولی قبل از خوابته بازم یکی دو ساعت به خوابت مونده حالا اینجا میخوایی یه لیوان آب یه قاشق پلو پلوخوری سرکه. بریستی یه لیوان آب آشا می دانید. هم بزن بعد یواش یواش بخور خیلی فواهد داره مؤمنان حتی در اخراج سنگ نقش داره چه سنگ های چه سنگ های کلیوی و اذا تمامذبی مسخنن اگر کسی درد دندان داره یه مقدار سرکه رو با حرارت ولر میکنه گرم عادی نه گرم جوشان یه مقدار این سرکه رو با شعله کم حرارت یه مقدار چکار کنه؟ گرم عادی حالا تو دهنش به چرخونه درد دندون ساکت میشه چون بیحس کننده طبیعیه حال اگر تورم لثه داره خون روش لسه داره پیله دندان عفونت دندان و لسه همچنین زیر ریشه ها حالت رودکانال شده از باب پانسمان موقت طبیعی پانسمان موقت طبیعی تا وقتی که برسه پیش متخصصه دندون پزشک یا فوق تخصص لثه هم دردش ساکت کنه هم بیماری پیشرفت نکنه هم ترم لثه بخوابه هم خون روش لسته بخوابه اببین بره بیشتر نشه پلاک دندون زردی دندون جرم دندان و در طول زمان جرم دندون هم اببین سرکه تو دهنت بگردون بعد از مصفاک زدن که دهنتو شسیان حالا با محلول آب سرکه تو دهنت بگردون قرغره کن بریز بیرون حتی تبرم لوزه های جانبیت و تبرم لوزی استعمام همه خوب میشه خلط اضافی پشت حرق که نزله بود اونم خوب میشه بهترین زمانش که شب قبل خواب مصفاکت زدی دهنت هم شستی تمیزه حالا این یه استقام یک سوم سرکه سفید دو سوم آب هم میزنم تو دهن میگردونم قرغره میکنم میزنم بیرون قورتش نمیخواد بدیم همه اونایی که توضیح دادن همه اونها با هم دیگه خوب میشه و اذا تمومو بهی مسخنن هنگامی که مزمزه کنیم به این محلول آب سرکه در حالی که یه مقدار گرمه نفع من وجع الاسنان نفع میبخشی از درد دندونا ها حالا این اقسام درد دندون داریم ما اینا بحثا کردم تو تبا رسول مصطفی وقوه لثه تقویت لسته میکنه لثه ها محکم میچسبه به بن دندان دیگه دندون سر جاش لقی نداره که مثل نردمون ای بره لسته ها محکم میچست به ببون دندون ریشه های دندون توی فک استوار میشه بعد اگر مشکل ریشه ای دوش مثلا پوسیدگی ریشه یا مشکل عفونت رود کانالی ریشه دوش باید بره درمان کنه ها یا اگر مینای دندون آج دندونش سراخ شده بود یا کلم خورده بود ما فعلا درد ساکت کردیم گفتیم پانسمان موقت طبیه. حتما باید بینه پیش دندون پزشک دندونش پر کنه. حالا با کرامکوبارت با سرامیک تصالف فهم و از جیبش بهتر بود. فلز تیتانیام. و مانند اینا. ردیف دندوناش درست نبود. ارتدانسی کنه. ردیف دند... دندون ها و تراز فکی رو درست کنه. این توضیح مطالب ای بزرگوار. حالا روایت معامان چیزهایی دیگه هم هستن مثل تخویت لثه ها فلی معام مثل خرم نیم نیمه نارس به جایی لثات مکم. مثل اینکه انار شیرین رو با حساج به جایی لات مکم. درد دندون دارم بیتابم شب تا صبح خوابم نبرید زمانشا می گرفتن سپرین بچه رو نس میکنم. تو سوراخ دندون باشه که دردش ساکت بشه تا صبح خوابش بره صبح بره پیش دندون پذش تو تخصصی گیاهی مومن گل میخک داروی این میخایی بود قدیما تک کفش و کوتاه قهوه پررنگ 6-7 از این گل میخک داروی ها مثلا این دندونم هم درد شش 6-7 از این گل که داروی ها با این طرف فکر بجو فکر بیحس میشه اگر تو سوراخ دندون بذاری در ساکت میشه حالا شب تا راحت میخوابی ولی این پانسمان موقت طبیعی ها بعد بری دندونت رو درست کنی. این هم یک کم از و تو بحث سرکه طبیعی قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم نعمل ادام الخل چه نیکو داروی طبیعی سرکه طبیعی انگور که بهترینش سرکه طبیعی انگور عسکریه چون وقتی مطلق میاد قدر ما سرکه انگور عسکریه اللهم بارک لنا فی این سرکه طبیعی خدای بر ما مبارک گردام فا ادام الانبیاء قبلی خرشت انبیاء قبل از من ها که 124 هزار نبی داشتیم که 303 تاش رسول بودن 5 تاش اولول از آخرین نبی آخرین رسول آخرین اولول از که نبوت خاصه هست حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست یشون میفهمد تمام انبیاء قبلی مثل من یکی از خرشتا و مایات مفیدشون چی بوده؟ سرکه طبیعی تو جیره قضاییشون بوده و در سبد غذایی خانوار بوده چون یک طبیعی از بسیاری از بیماری ها پیشگیری میکنه و در درمان بسیاری از بیماری هم نقش کلیدی داره حالا دونه دونه اگر خوندیم توضیح میدم. واس پیغمبر اکرم فرمودند صلی الله علیه و آله علی و سلم الله و ملائکته یصلون علی خوان علیه خوان یعنی ساروق سفره که روش غذا چیندن افرادم دورش نشستهن میخوان بخورن حالا سر این سفره غذایی سرکه هم باشه حالا فهمیدیم مؤمنان ان الله و ملائکته یصلون علی خوانا علیه خلون و ملحون هم نمک هست، هم سرکه حالا هر کی دوست داشت اول آخر قضاشو با نمک شروع میکنه. هر کی دوست ندوش یا بیماری خاصی داشت با سرکه شروع یعنی چی آقا یعنی اگر مثلا من قندخون دارم قندخونم بالای دیویسته نوستانی هم هست گاییم استرسی. استرسیه یا مثلا این حضرت خانومه هست حامله هست و این زن حامله هم دیابت حاملگی داره ایک نیمتونه اول آخر قضاش هایی نمک بخوره مثلا یا قضاش شور بخوره دیابت حاملگیش بدتر میشه یا اگر شخص نوعه یک یا نوعه دو دیابت داره اکنیم تونه نمک بخوره. اگر مومن ها فشارخون داره که هفت نوعه خب حالا فشارخون تصالب شرائنی داره یا تنگی عروغ داخلی داره قطر و زخامت داخل رگ کمه اکنیم تونه اول آخر نمک بخور اینا باید اول آخر چی بخورم؟ نکه قاشق چای خوری سرکه باز دوباره تکرار میکنم این زن حامله نباید سرکه زیاد بخوره نباید ترشی جا زیاد بخوره چون خود حاملگی خود دوران شیردهی خود دوران قاعدگی یکی از عوارزش چیه؟ یوبوسته اگر سرکه یا ترشی زیاد بخوره یوبوسته شدید میشه که تو تا آخر آن براش میمونه پس چی؟ نکه قاشق چای خوری اول آخر قضا سرکه میخوره که چی بشه مومنان؟ که کمک به هضم غذاش کنه، بزاق دهانش به خوبی ترشح کنه، سنگ بزاقی نگیره، بخشی از هضم غذا در دهان انجام شه. اگر ویار شدید داشتی، میگم اگر ویار شدید داشت نم نمک سرکه هم دلیل نداره. از باب احتیاط عملی، هر دو تاشو کنه، اول قضا سوسنبر سبزی سوسنبر آخر قضا نعنا یا عرق نعنا اینجا دم کرده سوسنبر یا نعنا فلفلی بعد از قضا چی؟ دم کرده نعنا یا عرق نعنا بخوره ریار شدیدش خوب میشه ریفلاکسای شدیدش که آق میزنه استفراغ میکنه و گاهی به همراه اسید مهدش خون بالا میاره اون همه خوب میشه دیگه این ناموس مردم یا ناموس خودت که ویار شدید تو ماه دوم سوم حاملگی دیگه لازمه است هفته ای چند بار بره بیمارستان سرام بزنه. یعنی افراد با هم فرق میکنن، داروشون هم با هم دیگه فرق میکنه. نمیتونی به صورت کلی یا مطلق برای همه مردم یه نسخه بپیچی. این اشتباهه. هر فردی با فرد دیگه فرق میکنه. این هم اومرا یه توضیح برای اینکه خدا درود میفرسته و ملائکش درود میفرستن بر سر سفره ای که سرکه طبیعی باشه نمک طبیعی هم باشه مثل پودر سنگ نمک هم بهداشتی هم میکروب کشی شده مثل نمک دریا بهداشتی میکروب کشی شده مثل نمک یاددار اگر کسی گواتر سمی سم داره یا قموات داره تا اینجا باید اول آخر غذا نمکه یاددار بخوره و همیشه به همراه غذاش سوپ ذرت بخوره. همونجون اینجا نمکه میشه نمکه یاددار که اول آخر غذا بخوره. به همراه غذاش هم باید چی بخوره همونجون؟ باید سوپ ذرت بخوره. تا این کمبود یادش خوب بشه. هم به شما اکن که گواتر یا قمبادش بیماری قمبادش خوب بشه معامم. هم گواتر سمیش، تشدید نشه که چشماش بله قیدس مجوهاش بهم چسبیده حالا یه حالتهایی در صورت پیدا میشه روایت بعدی امام صادق علیه السلام فرمودند: خلل خمره یشد دللثه سرکه انگور اسکری چون سرکه ها این مثلا آب انگور بعد خود به خود به جوش میاد خوردنش حوامه از سیر ال عنبیه اذا غلا و لم يذهب ثلثاه خوردنش حوامه حتی اگر مذکرنده نباشه حالا باید با حرارت دو سوم این مایه رو کم کنید چه دبس شیره انگور بشه چه نشه خب معنیش رو این میشه دو دپس دو ش. این چی همجون اگر دبس شد شیر انگور یا دو سومش کم شد ولی هنوز شیر انگور نشده دو ش حلال. اما وقتی جوش آمد دو سومش با هوت کم نشد اما این هم نجس هم خوردانش حاممه هم خرید فروشش حوامه حال اینه میگذاریم تا چه روز توی محیط در بسته که روش سرکه ریختیم ما ترش هم بستیم و یه زیلوی چیزی روش انده. حالا میشه سرکه قبل از سرکه شدن اینجا شرابه خوردنش حرامه اسکاره کل مسکرن حرام خمر حرامون لانه مسکران از نبیذا حرامان لنه مسکران از این جدیدها، شامپایین ها ودگاه و ریسکی و ساکی ها. این همه مایعات مس کنند اینا خوردنش حرامه حال اگر شراب انگور بود یعنی مایه مسکننده از انگور بود حالا اینه بگذاری چی بشه؟ سرکه طبیعی انگور ازگری بشه یا هر سرکه طبیعی دیگه یکی اشکان نداره خیلی مفیده حتی چنین سرکه زد انگله زد کرمکه زد کرم در معده در روده ها لسترم بسیار محکم عقل انسانم هم استوار میکن. از امام صادق علیه السلام خلل خمره یشد لفته و یقتل دواب البطنه توضیح دادم و یشد لعقل حالا استحکام عقل و مندگاری عقل فعال کاربردی چند تا مطلب بودا یکیش همینه که خدمتون گفتم. سرکه طبیعی ناشی از شراب طبیعی انگور که اون شراب طبیعی تبدیل به سرکه طبیعی بشه دستان فهمونی مومنان همه سرکا هم جرا. یعنی اول مایه نجسه بعدا شراب مسکر میشه که حرامه اکل و شربه شو نگهداریششو فروششو حمل و نقلشو ترویجشو توضیحشو همه چه حرام دهتایف حرام بعد میشه سرکه طبیعی درست خب پس سرکه طبیعی شو توضیح دادم یکی دیگه هم پارسال گفتم تو بحث یشدلعقل و اون چی بود اگر کسی سنش زیر 50 ساله هم سر کلهش سفید شد هم نسیان شدید فراموشی شدید داره هم دمانس زوال عقل داره هم آلزایمر زوال عقل پیشنونده داره هم یوبوسد داره هم نور چشمی شه هم زعیف شده همه اینا رو با هم خوب کنیم دعاشه به جون امام رضا علیه السلام احلیجات در اصل پرورنده بشه حلیله سیاه حلیله زد حلیله کاولی به نسبت مساوی مثلا ده گرم، درگرم گرم. اینا رو پود میکنی در یک کیلو اصل گرم اصل استخدوست اصل آبیشن یا اصل نعنا هم بزن یکی دو هفته بذار تو سایه باشه حالا هر روز صبح قبل اینکه بری سر کار مثلا درس خوندن یک قاشق مرب بخوری از این مخلوط بخور همه اون فوائدی که گفتم خوبه یکیش هم مبایست خودم یشد دلعقل تو رساله زهبیه یا تب و رزا هم نگاه کنیم از امام صادق علیه السلام و سلامه الخلو يسكن المرار ويحيي القلب ويقتل دود و ويشد الفم سركه طبیعی مؤمنا هم مرار مرار يعني ازدیاد مایع صفراوی یا غلظت بالای صفرا یا پیشرفته تر بشه لجن صفراوی اینجا التهابات صفراوی زیاد میشه. این کوره میسوزه. این تبش ناشی از ویروس و عامل خارجی نیست. این تبش ناشی از ازدیاد مایع صفراوی و عدم تخلیه صحیح مایع صفراوی به اسهل. حالا باید مؤمنا یک چکاب کنه. ببینیم آیا سنگ مجرای صفرا داره؟ یا سفراش خیلی غلیظ شده و عذاله صفرا زور نداره که سفرای قلیز رو کنه که مایه سفرای بره تو اسن عشق اونا دیگه چک میشه آسونا مایه سفرای شل کنید چیه همجون یکی چی قبلا گفتم هندیه بی نمک روزی شیش هفته خوشه شد تو یه لیوان آ یه چند دیگه سب کن به حساش رو کن همون لیوان آب با همون لپاش بخور مایه سفرای رقیق میشه یکی دیگهش چیه سرکه طبیعی انگور عسکریه سرکه سیب هم بحثش میرسیم رسیم میگم یحیی قلب کمک میکنه به درمان گرفتگی عروق و کمک میکنه به درمان حجیم بودن قلب وقتی حجیم قلب باشه، پمپاژ خون ضعیف میشه حالا سرکه طبیعی تو جیر باشه در درمان حجیم بودن قلب کمک. حال اگر هم قلبش حجیمه هم مشکلات دریچه قلب داره هم قطع قاعدگی چندین ساله داره مثلا یه خانومی هم قلبش حجیمه هم مشکلات دریچه قلب از عیس لختی و سلختی دریچه میترال داره و هم مومنا چندین سال قطع قاعدیگی داره یا چندین ماه یعنی بیماریم آمنوره سانویه قطع قاعدیگی حالا چکار کنی؟ این ستان رو با هم خوب کنی؟ این ناموس مردم یا ناموس خودت خوب بشه ها. یکیش چیه؟ همینی که الان میخونیم بحث سرکه طبیعی تو جیره قضاییش باشه دومی چیه؟ شبها قبل از خواب جوشانده کلم برگ سبز چهار پنج تا شیش هفت تا از این برگ ها شو تو قابلانه سه لیوان آب روش می ریزی. این به تا بشه یک لیوان آبش صاف می کنی که شد یک آشاب پلو خوری اصل گرم تا این یک لیوان آب جوشنده برگ کلم سبز می ریزی. هم میزنه میخوره. می خوره قطع قاعدگی های چندین ساله خوب میشه در زن ها. مشکلات دریچه قلبم در زن آمد خوب میشه اگر بخورم قرص و مرس و اینا دیگه لازم نیست یا بعضی باتسوی های خاص یا بعضی فنرهای خاص یا بعضی جرایه خاص حالا اینا اقسامش فهم کنه نمیخوام بگم پس قلبت زنده نگه همی داره یک کم توضیح داره یادتون خونم رقیق می‌کنه؟ نمیگذر سکته قلبی به نوع لخته خون بگیریم و یک طول و دود البت کرمک و کرم و انگل شکمی و رودهی رو از بین میبره نزیر چی؟ نزیر مغز تخمه هندوانه خام مغز خام تخمه هندوانه زده انگل و کرم و کرمکه نزیر هندی یکی دیگه نزیر چی مومنا؟ سرکه طبیعی و یشد دل فم فم یعنی کل محیط دهان و حلق خیلی جالب علاوه بر این معناش عام درست هست قرون امام صادق بود. یعنی هم لستات محکم میشه تورم لثه خوب میشه خون روش لست خوب میشه سنگ بزاقی دهان زی خوب میشه تورم لوزه جانبی خوب میشه تورم لوزه سوم خوب میشه مشکلات مخاط اضافی و نزله که انتهای حلقه اونم خوب میشه فضای دهان و هر کل این قسمت ها همه روبران میشه ارزون خوشمزه بدون هیچ استرس دیگه نمیخواد وقت پزشکم بگم بگم و مطلب بعدی از امام صادق علیه السلام نعمل ادام الخلو یک سرول مره سفرای اضافی که التحابان شدید میشه بدنش مثل کوره میسوزه و گاهی حاجها میزنه به مقص یه مرتبه میمیدی این حرفی که میزنه یا کاری انجام میده بر اساس عقل یا علم یا تجربه سعینی قسم ندراهام بره تو جاده خاکی ولی این حالت براش پیش میاد بلا تشبیه شبیه کسی که ژنتیکاً صفیه باشه یا جنون اطباقی باشه یا منگولیسم باشه چجوری یک تختش کم، دوزایش کم، کج؟ اگر صفرا بیش از اندازه غلیظ بشه و تخلیه نشان و لجن صفراوی بی بگیره، حرارت‌های داخلی میره بالا به گونه ای که به سر شخص میزنه تو تصمیم گیری کم میاره کاسه چک چه کنم چه نکنم به دستش میره همه تصور سعی کردن تصدیق سعی کردن شوق اکید داشتن از ما جزم و تصمیم و اراده کارو خوبم انجام دادن این هنوز توی خیالاته که این کارو انجام بدم یا نه زمان داره از دست میره فرصت تلایی داره از دست میره هنوز کار سعیش هم انجام نهده پس گاهی به خاطر استرس شدید گایی به خاطر التهابات ناشی از صفراوی قلیز یا لجن صفراوی که قبلا تو بحثش مؤمنان من مره رو توضیح دادم مؤمنان اولای کتاب ضبطم شده مؤمنان ویحیل غب و یشدل و یقتل دوا بالبص از امام صادق علیه السلام اینا رو پارسال به مناسبتی گفتم تو بحث خود ارزایی جنسی یا بخوان مبتلا به زنا یا لواط بشن فرض کن مثلا این جوان یا نوجوان مثلا جوان یا نوجوان دختر یا پسر حالا بخواد دست از پا خطا نکنی خود ارزایی جنسی نباشه در پسران استمنا نباشه در دختران استشها نباشه بین دو جنس مخالف زنا رخ نده. بین دو تا هم جنس لبات رخ نده یا تدلیک یا تفخیص. چه خاکی بسر کنه؟ فاصله بگیر از نامحرم و مواظب چشمش باشه. تا گرد و قبار خاک بهشت بر چهرش بنشیند. اما اگر قفلت کنه یا جاهلانه عمل کنه یعنی بیعقلانه عمل کنه جهل در مقابل عقل تو روایاتشیه یعنی بیعقلانه عمل کنه اینجا گردخاک و دوده سوزان جهنم برش میشینن لوات میکنه زنا میکنه چون جوان و نوجوان کپسول شهبته قربون این اسلام ولایی برن میگه برای اینکه مبتلا به زنا و لواط نشید تو هر سنی حتی جوان قدیم اینجا میگه این اسباب اساسیه پایین تنه رو اینجا رو با یه مش سرکی طبیعی ها کن کم پماد کم به 5 دقیقه 10 دقیقه صبر بعد با آب بشور میگه قطع می شود شهوت زنایی از بین میرود شهوت زنایی این سند داره تو کتب روایی پارسال توضیح دادم خدا روایتش از امام صادق علیه السلام الاستباغو بالخله یذهبو بنا نسخه نسخه دیگه یقطعو شهوت از زنا یه با زایده داره برای تأکید به شهوت زنا توضیحش هم دادم امام صادق علیه السلام فرمودند: الخلو و زیتون منطعامل مرسلین پارسال که توضیح روایت قبلیه دادم، ما در ضمن دانشنامه احادیث پزشکی بود ولی آقای آیت الله ریشهری ترجمه دکتر حسن صابری توضیح داد. یا فرمایش پدر علامه مجلسی بود آیت الله محمد تقیه مجلسی تو کتاب روضت المتقین جلد نه از اونجا روایت خوندم و ستون توضیح دارم تصابه فهمدیم مومن هم؟ پس سرکه طبیعی و روغن زیتون خوراکی غیر فراوری شده دیدی؟ الفلامش، الفلام معهود ذهنیه. الفلام جنس نگیریم چون بعضی زیتون ها سمیه روغنش هم سمیه اصلا روغنش روغن سنتیه اینجا که بخوادی که مصمومیت ناشی روغن میگید پس روغن زیتون شیرین خوراکی غیر فراوری شده صنعتی و دارای اساس نراشه حالا روغن زیتون شیرین خوراکی غیر فراوری شده این قوتل انبیار سرکه طبیعی به دست آمده از تخمیر طبیعی بدون افزودن اوسانسای شیمیایی، این قتل انبیاءه. درست مومن هم؟ الخلو و زیتو من طعام مرسلین. اللهم صلی علی محمد و محمد و عجل فرجم.